ایران بازنگری در تاریخ قلم رو میانی. بعد گفتیم سومریا ها حتی اگه امروز هم می بودن همین امروز کشوری به نام سومر می داشتیم بله مثل چه می‌دونم روسیه مثل ایران مثل هر جا تازه الان تاریخشون شده به شیش هزار سن. پس اینا نمیتونن دوازه هزاره داشته باشه اینقدر قدمت ندارن بنده های خودم اگر هر شما هر سرزمینی مثل ایران به من نشون دادین که گزارش سرمات و داشته باشه ارشکات گزارش سیل بلده. همشون داره گزارش طوفان داره یعنی گزارش بعد از رو داره گزارش طوفان بزرگ سیل داره درست سر ما نداره خلاصه فقط یه دونه جمشید نداریم که مثلا آره با با در های مختلف فقط در اوستا ثبت شده باشه بغلده. مثلا باز یک جمشید داریم روایت های اون آره یک روایت جمشید در واقع نداره مثلا جای دیگه باز جمشید رو حالا توی مطول مختلف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 در هوا پرواز کرد و مثلا به بابل رفته دوباره این همیشه یک پیوندی با بابل داره یا مثلا سام صامی بله دیگه سام صامی مثلا بلعمی میگه که هزار سال پادشاهی داشتند در این هزار سال یک ساعت درد سر یا بیماری نبود همه قضیه بیماری و میگم همه این چهره ها رو همه این چیزا ال ویژگی ها رو داره ولی همیشه یک پیوندی هم با بابل داره یک چهره ای هم داره جمشید تمام اینها جمشید توش یک انسان نه نه چق بکنه نه چیز بهش منسوب است شما این نسبتش به اون نسبت من به کریم خان من اصلا بیشتر میفرمم کریم خان کی بوده تا آدم هزار سال بعد از ما هزار سال بعد از ما این قضیه در نظر بگیریم حالا این جمشیده که میتونه انسان باشه چند نسل قبل از زرتوش و بعد از نه هزار سال قرار میگیره میتونه اسب به دورانش رام شده باشه میتونه به دورانش کشاورزی شکل گرفته باشه خیلی گستره نشده ولی میتونه وجود داشته باشه بند چهار وندیداد اهور و پادشاهی رو به جمع پیشنهاد می دهند. دونه به دونه می خواهد. بله اونه که مربوطه بند پنج جمشید این نوید را می دهد که در پادشاهی او نه سرما باشد نه گرما نه بیماری و نه مرگ. اینجا اشاره به بهبود شرایط محیطی و آهوه هوایی کاملا اشاره می کنه. نمونه همین بند در متن فهلوی مینوی خرد روی چهار پنج اومده درست. در بند هفت آشکار ها به جمع جایگاه شهریاری میرسه خیلی هم کوتاه این بند در بند هشت اینجا آغاز میشه به توضیحی که به گستارش مجسمش میزنم کوش نمیزنم میگه نخست 300 سال شهریاری که از جمع میگذره کنبود جا برای مردمان رمه ها سگان پرندگان و آتش های وجود میاد ببینید در پند پنج این نوید رو که نه سرما باشه نه کشنده گرم بعد که گفتیم بردید به اشاره به بهبود. شاید محیطی و آبا هوایی به نام ایزد یکتاب با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هممیهنان گرامی شنوندگان صدای امید و همراهان برنامه ایران ویج تاکونون کنون 21 قسمت از ایران وچ پخش شده و مباحث بسیار شیرین جذاب و در این حال چالش برانگیزی رو تا حالا دوستان و میهمانان برنامه و کاشناسان و محترم برنامه جناب آقای سعیدی کریمی، جناب آقای سورنا فیروزی، جناب آقای مهداد ایران مهر و سرکار خانم دکتر آزادی احسانی مطرح فرمودند در میانی این قسمت های مختلف برنامه یه توضیحاتی رو بنده میخوام خدمت دوستان و شنوندگان گرامی ارز کنم تا اینکه مباحث تا حدودی بازتر بشه و روشنتر رو بشه. ببینید این روش مطالعه و روش پژوهش و روش بحثی که ما داریم یه روش بحث جدید هستش تا به حال در هیچ جای دنیا نه تنها در ایران در هیچ جای دنیا چنین بحثهای مطرح نشده و اساسا مطرح نشده که چون تا به حال در مورد تاریخ ایران اون مباحثی که در دانشگاه های مختلف دنیا مطرح هست همون روشی که خودشون درست کردن یه سری افراد آریایی که خیلی هم خوشگل بودن خیلی نجیب بودن و پاک هم هستند از شمال معلوم نیست از استپهای آسیای میانه از استپای روسیه از هر جایی به از جهنم در ری اومدن تو این فلات ایران و بعد در طول هزار سال یه تمدنی ساختان از مادها اول دی اوکو ماد رو ساخت بعد از هخامنشی و ها و ساسانی که بعد از بعد از حمله اعراب این از بین رفت و بعد موجود. همین یعنی به این شکل اومده ولی تا به حال کسی در مورد تاریخ قبل از اون مطرح نکرده که اساسا آیا در هزاره چهارم پیش از میلاد، هزاره پنجم پیش از میلاد، هزاره شیشم پیش از میداد هفتم هشتم نهم دهم و اتا یا پیش از میداد در این سرزمین هیچ خبری نبوده دوستانی که در این مباحث شرکت کردن قصد دارن این قالبه که در واقع خیلی هم مقدس شده در ذهن برخی این قالب رو بشکنند و از بین ببرند موفق بودن و این برنامه فیدبک های خوبی داشته ایمیل ها و پیام های خوبی اومده و در این حال بعضی جا تا حتی گله شده در مورد این بحث هایی که توی این برنامه ها مطرح هستش و بعضا بگو بی گومگوهایی که بین کارشناسان این کاملا طبیعیه چرا چون کتابحال پژوهش خیلی گسترده ای هم صورت نگرفته و کارشناسان کنن در این برنامه در سن جوانی هستند و در سیستم دانشگاهی ایران هم خب یک سیستم متصلبی هست دانشکده های تاریخ دانشکده های باستان شناسی ایران متاسفانه یک سیستم مد... تمام دانشکده های علوم و حتی بقیه علوم دیگه این سیستم متصلبی یه سری اساتیدی که برای اینکه حفظ بکنن کرسی خودشون راه را برای جوان ها باز نمیکنن و به سختی میدون می دن به افکار جدید و شون سن که داره میره بالا اون صفت محافظ کاری در شخصیت انسان ها شکل میگیره و نزج پیدا میکنه، اجازه بروز و ظهور این اندیش های جدید رو نمی دن لذا پژوهشگرانی که در این برنامه دارم ارائه می دن مباحث خودشون رو با استعداد شخصی خودشون و با کمک گرفتن از پژوهش‌های دیگر پژوهشگرانی که در این مورد تحقیق کردن دارن مباحث خودشون رو مطرح می‌کنن و در واقع تنها هستند و ما دستی یاری دراز می‌کنیم به همه پژوهشگرانی که در این مورد علاقمند هستند و می‌خوان پژوهش بکنن. لذا اگر توی این بین مباحث، بگو مگوها و حتی چالش‌ها و تو سر هم زدن ها هم میبینین اصلا تعجب نکنین امر طبیعیه معمولا تو علوم انسانی اینجوریه بحث ها انجام میشه چالش ها انجام میشه اصلا اساس علوم انسانی بر چلنج هستش یک نظریه باید در با سوهان های مختلف سابیده بشه و اون خمیر مایه‌ای که به این تفکر تزریق میشه اون چیزی که ازش بیرون میاد اون محصولی که از اون بیرون میاد باید یه محصولی باشه که در مقابل سوالات و شبه های مختلف جواب داشته باشه و باید بتونه به شبه های مختلف جواب بده. بنده به عنوان مجری این برنامه در میان این برنامه ها خب تا به حال وارد مباحث در واقع محتوایی برنامه نشدم و سعی کردم بیشتر رهبری مباحث رو به عهده بگیرم در واقع هدایت بکنم بحث رو و تریبون ها رو عوض بکنم. و تا حدودی مجری مناظره باشم در این میان برنامهی که برای ایران وجد از سایت صدای امید پخش خواهد شد میخوام یک سری مسائل کلی تری رو خدمت دوستان و شنوندگان عزیز عرض بکنم تا اینکه در قسمتهای بعدی ما همچنان بحث‌های خودمون رو خواهیم داشت و ادامه خواهیم داد ما بحثمون از ایرانویج شروع شد ما قبل از ایرانویج یه برنامه دیگه داشتیم تحت عنوان برابری که در قسمت‌های مختلف این برنامه بهش ارجاع میدادیم اونجا بحث از تکامل انسان‌ها انجام شد و تا اینکه رسیدیم به اون قسمتی که انسان‌ها از آفریقای شمالی حرکت کردند به سمت شرق و مشخصاً در فلات ایران و مشخصاً در این سو در شمال جنوب شرق و غرب زاگرس مستقل شدن و این آزمایشات و تحقیقات باستانشناسان هم نشون میده که اتفاقا اولین انسان هایی که پا گذاشتند به این قسمت فلات ایران در همین قارهای زاگروس سکونت گزیدند و نشانه های باستانشناسی اونم هست این انسان که پا گذاشتند به این فلات ایران و در این سکونتگاه های سکنه ها اولین انسان ها و نیاکان ما ایرانی ها و کلند این قدم رو میانی هستند گرچه یکی از کاشناسان این برنامه در دو تا مقاله که در واقع جنتیک هم خونن جناب آقای سورنا فیروزی معتقدن این که نیاکان ما حدود 35 هزار سال پیش در آسیای میانه در فرارود بودند و اتا هیچ ایرادی هم نداره و یکی یک سری نیاکان ما حدود 18500 سال پیش هم توی آسیای میانه بودند و در دو تا هاپلو گروپ به سمت جنوب یعنی به سمت جنوب و جنوب غرب فلات ایران حرکت کردند و گسترش پیدا کردند و هیچ ایرادی هم نداره بلکه اون یک سری سکونتگاه‌های مثلا حدود 56000 هزار سال پیش توی سکونتگاه‌های زاغروس حضور داشته باشن بعد به سمت فراروت هم حرکت کرده باشم حدود 35 هزار سال پیش یک سری از نیاکان اونجا سوکنو گزیده باشن این از لحاظ علمی هیچ ارادی نداره ولی بحثی که خود منده میخوام تو این میان برنامه و تو این قسمت خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم این که در اسناد نیاکان ما ایرانیان اصلا نگاه به زمین چی بوده زمین رو چی میدونستان در تفکر خودشون زندگی و کره زمین رو چجوری جوری می میدیدند و این رو میخوام در واقع بررسی بکنم تو این بحث سعی میکنم که اعتقادات اساتیر و افسانه های مربوط به زمین که به شکل جزئی تر و دقیقتر مورد نقل و تحلیل قرار گرفته خدمت دوستان ارز بکنه در علاوه بند حدود سه تا قسمت خواهد بود که یکی در مورد خود تن زمین هست یکی هم روان زمین هست و یکی هم روانکاوی زمین هست از دید های ایرانی از به حضورتون که در مورد تن زمین در اساطیر ایران باستان باید عرض کنم که طبقات زمین از دیدگاه اساطیر باستان بر اساس متون پهلوی سومین آفرینش هرمزد هستش یعنی سومین آفرینش هرمزد از آن زمینه هرمزد زمین رو از پای خودش آفریده و در اساطیر ایران باستان امق اون زمین رو سه طبقه دونستن از فروغ و فر آنان است اینی که ما میخونم می از یشت ها هست فروردین گشت کرده یک بند دو از فروغ و فر آنان است ایزر توشت که من آسمان را در بالا نگاه میدارم آن آسمانی که از مینوان برفراشته استوار و بعیدالحدود حدود بر پاست چنان به نظر میرسد که فلز گداخته بر فراز طبقه سومین زمین درخشان باشد خیلی نکات جالبی تو این هست که علم زمین شناسی نوین هم برای جرم کره زمین یه تقسیم مشابهی هم واقع قائل هست و این خیلی عجیب هستش که ایرانیان باستان نوع ساختار کره زمین رو طوری میدن که الان علم زمینشناسی امروز اون رو به طور کامل اثبات میکنه و تایید میکنه میدونیم که به از کره یا اتمسفری که دور کره زمین هست و اون 75 درصد که آب هستش، زمین جاری است. خود کره زمین سه طبقه است. این طبق. یه طبقه است که پوسته هست یه پوسته جامد هست این پوسته جامد که روی قاره ها معمولاً 70 کیلومتر یا 70 هزار متر 50 هزار متر ذخامت داره روی سکف و قیونسان معمولاً حدود 15 هزار 20 هزار متر یا 20 کیلومتر ذخامت داره دومین قسمت این کره زمین یا دومین لایی این کره زمین قسمت مزاب زمین هست که در اماق بالغ بره 60 کیلومتری پوسته جامد قرار داره که مزاب هست یعنی مایع هست که ب... معمولا تو کتاب‌های زمین‌شناسی میگن جبه و بعد از جبه آه... هسته هست یعنی یه توپ و یک کره که خیلی کوچیک‌تر در دل این کره که این هم جنسش جامد جالب هستش که دقیقاً مثل همون گفته فروردین گشت هست جامد هستش که این هسته مرکزی زمین رو تشکیل میده و این از آه... به حضورتون که میدان مغناطیسی که کره زمین داره و این جاذبه ای که کره زمین داره خیلی ها معتقدن که و خیلی ها یعنی همه تقریبا زمین شناسا معتقدن که حاصل همین هستی جامد کره زمین هستش در این طبقه بندی از زمین طبقه دوم که توی اعماق 60 کیلومتری یا هزار متری قرار داره و مذاب هست اسطوره دوزخ هستش که در اساطیر ایران و باستان جایگاه اون رو در دل زمین قرار داده و یه بندی جالب هم از اساطیری زمین در بندهش هست که اینجوری بیان شده چنین گوید او که نخوست یک سوم زمین را فراز آفرید سخت چون سنگزار یک سوم این زمین را فراز آفرید گرد آکنده سه دیگر یک سوم این زمین را فراز آفرید از گل نرم در روایت پهلوی همچنین در توصیف موقعیت زمین هم در فضا اینجوری اومده میگه که زمین را همچون زرده تخم مرغ در میان آسمان آفریده که خود چون تخم مرغ است و این هم شما تو شاهنامه ببینیم میگه چود در یاست این گنبد نیلگون زمین چون جزیره میانند درون و و میبینیم که نگاهشون جو به کره زمین چید و جالبه که توی یونان باستان هم عرستو هم یه هم چیزی معتقد بود یعنی زمین رو گرد میدونست و دور زمین رو یه ماده‌ای که اسمش رو اسیر با سه نقطه می نویسن تلقبی می کرد. ولی ببینیم جغرافیای این کره زمین تو اساطیر ایرا... کهان ایران چطوری بیان شده در میان متون پهلوی کامل ترین متنی که مطابق اون میشه نقشه فرضی از جغرافیای اساطیری این کره زمین ترسیم کرد بندهش هستش به غیر از بندهش فصول یه چند تا فصل یه فصولی از روایات پهلوی گزیدههایی هایی از زادسپرم هست و مینوی خرد مینوی خرد و برخی دیگر از متنهای که به زبان پهلوی نگاشته شده مطابق اونچه که در این متونی که عرض کردم اومده زمین به دو تا نیمکوری زیرین و زبرین تقسیم میشه که تنها نیمکوری زبرین آن قابل زیست برای انواع حیوان و انسان هستش درباره چگونگیه زمین ها در متون پهلوی اینجور اومده که زمین سیوسنو است در آغاز هزاری هفتم پس از تاریخ احیمان بر زمین هنگامی که تیشتر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند زمین را همه جاگ نم بگرفت به هفت پار بکس است داراگ زیر و زبر و بلندی و نشیب شد پاری به اندازه نیمه نیمه در میان و شش پاری دیگر پیرامون آن قرار گرفت هر پاره را اقلیم میگفتن که این اقلیم ها توی زبان پهلوی هم همون کشور هستش یعنی هر جا اقلیم میاد جا ببینی کشور معمولا ترجمه کردن و چون دارای مرس هستن میگه که پاره که به خراسانه است کشور ارزه پاره که به ناهی خاورانه است کشور سبح دو پاره که به ناهی نیمروزه است کشور فرده یا فرده و بددهش دو پاره ایراکی به ناحیه اپاختر است کشور وروبریشن و ورو جریشن خواندن که میان ایشان به اندازه ایشان است که میان این تا کشور تا اقلیم یه منطقه ای رو اینا معتقد بودن ایرانیان باستان که بهش میگفتن خواه نیرست که بحث های ما در ایران ویژ هول اتفاقا هول همین خوانیرس هست. بعد در ادامه میگید در پاره ای از این ارز به حضورتون که متون پهلوی کوه ها بر زمین تازش اهریمن و لرزه ای که سخت بر تن زمین میندازه. یعنی اون زلزله های بسیار مهیبی که در اون موقع اتفاق میافتاده